اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها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 از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت و از خدایی بپرهیزید که همگی به عظمت او معترفید و هنگامی که چیزی از یکدیگر میخواهید نام او را میبرید. و نیز از قطع رابطه با خویشاوندان خود پرهیز کنید زیرا خداوند مراقب شماست و آتوا یتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأقلوا اموالهم الى اموالكم و اموال یتیمان را هنگامی که به حد رشد رسیدند به آنها بدهید و اموال بد خود را با اموال خوب آنها عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان نخورید زیرا این گناه بزرگی است.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 و اگر میترسید ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را رعایت نکنید، از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو، یا سه، یا چهار همسر، و اگر می ترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آنها اید استفاده کنید این کار از ظلم و ستم بهتر جلوگیری میکند می کند. و نساء صدقاتهن لنحله فا این طبن لكم عن شیئی منه نفسا فکلوه هنیئن بریئا و مهر زنان را به طور کامل به عنوان یک بدهی به آنان بپردازید اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند حلال و گوارا مصرف کنید ولا تمسوا اموالكم التي جعل الله لكم قيامه وارزقوهم وارو زمقومهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست صفیهان نسپارید و از آن به آنها روزی دهید و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید وَبِئْتَاهُلْ يَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَ حَفَا إِن آنَسْتُم فَإِن آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفْعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا و من کان غنیا فليستعفف و من کان فقیرا فليأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم و کفا بالله حسیبا و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمائید اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید و پیش از آنکه بزرگ شوند اموالشان را از روی اسراف نخورید هر کس که بی‌نیازه است از برداشت حق و زحمت خودداری کند و آن کس که نیازمنده است به طور شایسته و مطابق زحمتی که میکشد از آن بخورد و هنگامی که اموالشان را به آنها باز میگردانید شاهد بگیرید اگرچه خداوند برای محاسب کافی است مما ترك والاقربون وین نیست ایناسیبون مییممت تا راگلولیدنی والاقربونمیم مییممقالم اینه اوقدرتتو را نیبم مفرو برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جایی میگذارند سح نیست و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر؟ و خویشاوندان میگذارند سهمی خواه آن مال کم باشد یا زیاد این صهمی است تعیین شده و پرداختنی وإذا حضر القسمة اولو القربا والیتاما والمساكین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واگر به هنگام تقسیم عر خیشاوندان و طبقه ای که ارث نمیبرند و یتیمان و مستمندان حضور داشته باشند چیزی از آن اموال را به آنها بدهید و با آنان به طور شایسته سخن بگویید و یخش الذيلم تراکین خالفییم زوررییتم بافن خواف و عم. خوفو الله قولاً سدیدا کسانی که اگر فرزندان ناتوانی از خود یادگار بگذارند از آینده آنان میترسند ترسند باید از ستم درباره یتیمان مردم بترسند از مخالفت خدا بپرهیزند و سخنی استوار بگویند ان الذين يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظلما اِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می در حقیقت تنها آتش میخورند و به زودی در شعله های آتش دوزخ سوزند يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْن آباؤكم وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا خراباند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما دو دختر و بیش از دو دختر باشند دو سوم میراث از آن آنهاست و اگر یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر مگی فرزندی داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادر از او ارس برند برای مادر او یک سوم است و بقیه از آن پدر است و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم میبرد و پنج ششم باقی مانده برای پدر است همه اینها بعد از انجام است که او کرده و بعد از ادای بین است این فریزه الهی و خداوند دانا و حکیم است ولكم نصف ما ترک ازواجكم این لم يكن لهن ولد فا این کان لهن ولد فلکم الربع مما ما من بعد وصيتي يُصِينَ بها أُودَيٌّ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلا يورث كلالا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدة فلكل واحد منهم فإن كانوا أكثر من ذلك فَهُمْ شركاء في الثلث من بعد وصية يُوصَى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم و برای شما نصف میراث زنانتان است اگر آنها فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم از آن شماست پس از انجام وصیتی که کرده اند و عدای دین و برای زنان شما یک چهارم میراث شماست اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد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 پس از انجام وصایتی که شده و ادای دین به شرط آنکه به آنها ضرر نزند این سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است دین که حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات ی دقیل و جننتین تجریمین تحت انهار و خالیدی نفیها و الفوز و لظیم اینها مرزهای الهی است و هرکس خدا و پیام برش را اطاعت کند و قوانین او را محترم بشمرد خداوند وی را در باغ از بهشت وارد می کندند که همواره آب از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن میمانند و این پیروزی بزرگی است و من یعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا يدخل ناراً خالداً فيها وله عذاب مهین و آن کس که نافرمانی خدا و پیام برش را کند و از مرزهای او تجاوز نماید او را در آتشی وارد می کند که جاودان در آن خواهد ماند و برای او مجازات خار کننده ایست. وَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَتَمْ مِنْكُمْ و شهدوا فامسكوهن حتى الموت او يجعل الله لهن سبيلا. و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بتلبید اگر گواهی دادند آنان را در خانه های خود نگاه دارید تا مرگشان فرار رسد یا اینکه خداوند راهی برای آنها قرار دهد ولذانی یاتیانها منکم فااذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحیما و از میان شما آن مردان و زنانی که همسر ندارند و مرتکب آن کار زشت میشوند آنها را آزار دهید و حد بر آنان جاری نمایید و اگر توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند از آنها درگذرید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. این علی الله ذُنَّى يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام میدهند سپس زود توبه می‌کنند خداوند توبه چنین اشخاصی را میپذیرد. وخدا دانا و حکیم است و لیست يعملون السيئات حتى حتى اذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الآن قال اني تبت الان وللذین يموتون وهم کفار لهم عذاباً علیماً برای کسانی که کارهای بد را انجام می‌دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا میرسد میگوید الان توبه کردم توبه نیست و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم <تصفيق> كرته يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعهنوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا, إلا ان ياتين بفاحشه مبينه معرو این و اینگرریمونون الله فيه كثيرا ای که ایمان آورده اید برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه و ایجاد ناراحتی برای آنها ارز ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید از مهر تملک کنید. مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند و با آنان به طور شایسته رفتار کنید. و اگر از آنها به جهتی کراحت داشتید برن تصمیم به جدایی نگیرید چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار میدهد و این اردتم استبدال زوج مکال زوج و آتیتم و آتیتم احداهن نقیم فلا تأخذو منه شیعا و, و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی به عنوان مهر به او پرداختید، چیزی از آن را پس نگیرید آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشکار؟ متوصل می شوید و, و, و, و, و چگونه آن را باز پس می گیرید در حالی که شما با یک دیگر تماس و آمیزش کامل داشته اید و از این گذشته آنها هنگام ازدواج از شما پیمان محکمی گرفتهاند ولا تنكحوا ما انكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقت وساء سبيلا با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده‌اند هرگز ازدواج نکنید مگر آنچه در گذشته پیش از نزول این حکم انجام شده است زیرا این کار عملی زشت و تنفر آور و راه نادرست استمتابتونتونالتون وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي من نساءکم الّتي دخلت بهن فَإِلَمْ فَإِلَمْ تَكُونُ دَخَلْتُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَ بِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و امه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانی که شما را شیر داده اند و خواهران رضایی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافتهاند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اید و چنان که با آنها آمیزش جنسی نداشته اید دختران آنها برای شما مانعی ندارد و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند نفه سرخانده ها و نیز حرام است بر شما جمع میان دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است. و من النساء ایلا ما ملکت ايمانكم کتاب الله عليكم وأحللكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتُهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان علیما حكيما و زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است اینها است که خداوند بر شما مقرر داشته است اما زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد برای شما حلال است که با اموال خود آنان را اختیار کنید در حالی که پاک دامن باشید و از زنا خودداری نمایید و زنانی را که متعه ازدواج موقت میکنید واجب است مهر آنها را بپردازید و گناهی بر شما نیست دران چه بعد از تقییم مهر با یک دیگر توافق کرده اید بعدن می توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید خداوند دانا و حکیم است و من لم يستطع منکن طولا این ینکح المحصنات المؤمنات فمما فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانُكُم مِنْ فتياتِكُم الْمُؤمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُم بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإذنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ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 و ان تصبروا خیر لکم والله غفور رحیم و آنها که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاک دامن با ایمان را ندارند می توانند با زنان پاک دامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند خدا به ایمان شما آگاه تر است و همگی اعضای یک پیکری. آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید به شرط آنکه پاک دامن باشند نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند و در صورتی که محسن باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت این اجازه ازدواج با کنیزان برای کسانی از شماست که بترسند از نظر قریزه جنسی به زحمت بیفتند و با این حال نیز خودداری از ازدواج با آنان برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است یرید الله لیبین لكم و سنن الذین من قبلكم و یتوب والله و علیم حکیم خداوند میخواهد با این دستورها راه های خوشبختی و سعادت را برای شما آشکار سازد و به سنت های صحیح پیشینیان رهبری کند و توبه شما را بپذیرد و خداوند دانا و حکیم است والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا خدا میخواهد شما را ببخشد و از آلودگی پاک نمايد اما آنها که پیرو شهواتند میخواهند شما به کلی منحرف شوید. يريد الله و خدا میخواهد با احکام مربوط به ازدواج با کنیزان و مانند آن کار را بر شما سبب کند و انسان ضعیف آفریده شده و در برابر توفان قرايز مقاومت او كم است يا <تصفيق> أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خودکشی نکنید خداوند نسبت به شما مهربان است و من ذلك وظلما فسوف نارا وكان ذلك على الله يسيرا و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد به زودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است این تجنبوک از بائر ما نهن عنه نکفر عنكم نکفر عنکم و ندخلکم مدخلا کریما اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی میشوید پرهیز کنید گناهان کوچک شما را میپوشانیم ما شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید مردان نصیبی از آنچه به دست آورند دارند و زنان نیز نصیبی و از فضل و رحمت و برکت خدا برای رفع تنگناها طلب کنید و خدا به هر چیز داناست. ولكل جعل موالی من ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمان کن فآتون هم نصیبهم. این الله کان علی كل شیء شهیدا. برای هر کس، دار قرار دادیم. که از میراث پدر و مادر و نزدیکان احس ببرند و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته اید نصیبشان را بپردازید خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است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 تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا مردان سرپرست و نگهبان زناند به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند و زنان صالح زنانی هستند که متواضعند و در قیاب همسر خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کنند و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بین دارید، پند و اندرز دهید و اگر موثر واقع نشد، در بستر از آنها دوری نمایید و اگر هیچ راهی جز شدت عمل برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود، آنها را تنبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند راهی برای تعدی بر آنها نجویید بدانید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است و این خفتم شقاق بینهما فبعثو حکما فبعثو حکما من اهله و من اهلها این یریده اى يريد اصلاحا وفق الله الله كان عليما و اگر از جدائی و شکاف میان آن دو همسر بین داشته باشید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگی کنند اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند خداوند به توافق آنها می میکند زیرا خداوند دانا و آگاه است واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی قربا والیتاما والمساكین والجار ذی القربا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا و خدا را بپرستید و هیچ چیز را هم تا او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید همچنین بخیشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد الَّذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا آنها کسانی هستند که بخل میبرزند و مردم را به بخل دعوت می کنند و را که خداوند از فضل و رحمت خود به آنها داده کتمان می و ما برای کافران عذاب خارکننده ای آماده کرده ایم والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا وانها كسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و ایمان به خدا و روز بازپسینی ندارند و کسی که شیطان قرین او باشد بد همنشین و قرینی است و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر و وانفقوا انفقوا مما رزقهم الله و الله بهم چه می اگر آنها به خدا و روز باز پس این ایمان می و از آنچه خدا به آنان روزی داده در راه او انفاق می کردند و خداوند از اعمال و نیات آنها آگاه است. این الله لا یظلم و این تک یضاعفا و من لدنه اجرا عظیما خداوند حتی به اندازه سنگینی زر ستم نمی کند و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان می سازد و از نزد خود پاداش عظیمی در برابر آن می دهد. فَكَيْفَ إِذَا جئنا من كُلِّ أُمَّةٍ بشهید وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی شاهد و گواهی می آبریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد یومئذی وادلذین کفر وعصوه رسول لوت سوات لوت سوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا در آن روز آنها که کافر شدند و با پیامبر به مخالفت برخاستند آرزومی کنند که ای کاش خاک بودند و خاک آنها با زمین های اطراف یکسان میشد و به کلی محو و فراموش میشدند. در آن روز سخنی را نمی از خدا پنهان کنند. <تصفيق> حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرا سبيل حتى ولا جنبا إلا عابرا سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ أُنثَى أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَاتَّيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا غفورا ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه میگویید و همچنین هنگامی که جنوب هستید مگر اینکه مسافر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا مسافر و یا قضای حاجت کرده اید و یا با زنان آمیزش جنسی داشته اید و در این حال آب برای وضو یا غسل نیافتید با خاک پاکی تیمم کنید به این طریق که صورت و دستهایتان را با آن مسخ نمایید خداوند بخشنده و آمرزنده است الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ويريدون ان تضل السبيل آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب خدا به آنها داده شده است به جای اینکه از آن برای هدایت خود و دیگران استفاده کنند برای خیش گمراهی میخرند و میخواهند شما نیز گمراه شوید والله اعلم باعدائکم وكفى بالله وليا وكفى بالله خدا به دشمنان شما آگاه تر است ولی آنها زیانی به شما نمیرسانند، و کافی است که خدا ولی شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد من الذین هادو يحرفون الکلم عن مواضعه و ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا, وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولیکن لعنهم الله فلا يؤمنون الا قلیلا. بعضی از یهود سخنان را از جای خود تحریف می و به جای این که بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم می گویند شنیدیم و مخالفت کردیم و نیز میگویند بشنو که هرگز گز و از روی تمسخر میگویند گویند ما را تحمیق کن تا با زبان خود حقایق را بگردانند و در آیین خدا تئ زنند ولی اگر آنها به جای این همه می میگفتند شنیدیم و اطاعت کردیم و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده تا حقایق را درک کنیم برای آنها بهتر و با واقعیت سازگارتر بود ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته است از این رو جز عده کمی ایمان نمی آورند <تصفيق> مصدقا لما معكم من قبل ان نقم سوجوها فنردها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السد وكان امر الله مفعولا اي كساني كتابه خدا به شما داده شده به آن که بر پیامبر خود نازل کردیم و هماهنگ با نشانه است که با شماست ایمان بیاورید پیش از آنکه که صورتهایی را کنیم سپس به پشت سر بازگردانیم یا آنها را از رحمت خود دور سازیم همان گونه که اصحاب سبت گروهی از تمحکاران بنی اسرائیل را دور ساختیم و فرمان خدا در هر حال انجام شده نيست ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما خداوند هرگز شرک را نمیبخشد و پایین تر از آن را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند میبخشد و آن کس که برای خدا شریکی قرار دهد گناه بزرگی مرتکب شده است آیا ندیدی کسانی را که خود ستائی می کنند این خود ستائی ها بی ارزش است بلکه خدا هر کس را بخواهد ستایش میکند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. انظر کیف یفترون علی الله به ببین چگونه بر خدا دروغ میبندند و همین گناه آشکار برای مجازات آنان کافی است. آلم تر من الكتاب يؤمنون ويقولون يؤمنون من آمنوا سبيلا. آیا ندیدی کسانی را که بهرهای از کتاب خدا به آنان داده شده. با این حال به جبت و طاغوت بت و بت پرستان ایمان میآورند و درباره کافران میگویند آنها از کسانی که ایمان آورده اند هدایت یافته ترند اولائک الذین لعنهم الله و من الله فلن تجد له نصيرا آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته است و هر کس را خدا از رحمتش دور سازد یاوری برای او نخواهی یافت ام لهم من الملك لا آیا آنها یهود سهمی در حکومت دارند در حالی که اگر چنین بود کمترین حق را به مردم نمیدادند يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما یا <تصفي> <تصفيق> اینکه نسبت به مردم پیامبر و خاندانش بر که خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد میورزند ما به آل ابراهیم که یهود از خاندان او هستند نیز کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها قرار دادیم من آمن به و من و کفا ولی جمعی از آنها به آن ایمان آوردند و جمعی راه مردم را بر آن بستند و شعله فروزان آتش دوزخ برای آنها کافیست این الَّذِينَ كَفَرُوا سوف نصلّيهم رم كلما كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب بدّلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما کسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنها را در آتشی وارد می‌کنیم که هرگاه پوستهای تنشان در آن بریان گردد و بسوزد پوستهای دیگری به جای آن قرار می دهیم تا کیفر الهی را بچشند. خداوند توانا و حکیم است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 و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به زودی آنها را در باغهایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش است. همیشه در آن خواهند ماند و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود و آنان را در سایه های گسترده و فرهبخش جای می دهیم. ان الله يأمركم <سلام> تؤدوا حكمتم <سلام> بين الناس تحكموا بالعدل به الله كان سميعا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید خداوند اندرزهای خوبی به شما می دهد. خداوند شنوا و بیناست یا الذین اطیعوا الله و فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كنتم, كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعُوِيلًا ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیام بر خدا و اولوالامر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ و يريد ان يضلهم ضلالا بعيدا. آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه از کتابهای آسمانی که بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند ولی می برای داوری نزد تاقوت و حکام باطل بروند با این که به آنها دستور داده شده که به تاقوت کافر شوند اما شیطان میخواهد آنان را گمراه کند و به بیراه های دور دستی بیفت کرد. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول رأیت المنافقین رأیت عنك صدودا و هنگامی که به آنها گفته شود، به سوی آنکه خداوند نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را میبینی که از قبول دعوت تو اعراض میکنند. فکیف اذا اصابت هم بما قدمت ایدیهم ثم ثم جاءوك که یحلفون بالله این اردنا یحلفون بالله این اردنا ایلا احسان و پس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان گرفتار مصیبتی میشوند سپس به سراغ تومی آیند سوگند به خدا یاد میکنند که منظور ما از بردن داوری نزد دیگران جز نیکی کردن و توافق میان طرفین نزاع نبوده است. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا آنها کسانی هستند که خدا آنچه را در دل دارند می داند. از مجازات آنان صرف نظر کن و آنها را اندرده و با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بی الله ولو انهم ای انفسهم جاؤو کف استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله, لوجد الله تواب الرحیم ما هیچ پیام را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می کردند و فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش میکردند و پیام هم برای آنها استغفار میکرد. خدا را تو به پذیر و مهربان می آفدند فلا و یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا, ثم لا في أنفسهم حرجا مما قضيت به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند ولو أن كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما لكان خيرا لهم و اگر همانند بعضی از امت‌های پیشین به آنان دستور می‌دادیم دادیم را به قتل برسانید و یا از وطن و خانه خود بیرون روید تنها اده کمی از آنها عمل می‌کردند و اگر ان درس ها ایرا که به آنان داده میشد انجام میدادند برای آنها بهتر بود و موجب تقویت ایمان آنها میشد و من لدنا اجرا عظیما و در این صورت پاداش بزرگی از ناحیه خود به آنها میدادیم و و آنان را به راه راست هدایت می‌کردیم و الله و الرسول فاولائک فاولائک مع الذين انعم الله عليهم من النبین والصدیقین والشهداء والشهداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در روز رستاخیز هم نشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان و آنها رفیقهای خوبی هستند ذلك و این موهبتی از ناحیه خداست و کافی است که او از حال بندگان و نیات و اعمالشان آگاه است يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ای کسانی که ایمان آورده اید آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ کنید و در دسته های متعدد یا به صورت دسته واحد رسوئے دشمن حرکت نمایید و این منکمکم لمن لا یبطئ ان قال قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا. در میان شما افرادی منافق هستند که هم خودشان سست میباشند و هم دیگران را به بسسفی میکشانند اگر مصیبتی به شما برسد میگویند خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبودیم تا شاهد آن مصیبت باشیم ولا ان اصابکم من الله لا یقولنک ان لم تکم بینکم وبینهم مودتیا یا معهم فافوز و اگر غنیمتی از جانب خدا به شما برسد درست مثل این که هرگز میان شما و آنها دوستی و مودتی نبوده میگویند ای کاش ما هم با آنها بودیم و به رستگاری و پیروزی بزرگی میرسیدیم. فل يقاتل في سبيل من یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحياة الدنیا بالآخره ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا کسانی که زندگی دنیا را به اخرافت اند باید در راه خدا پیکار کنند و آنکس که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد پاداش بزرگی به او خواهیم داد و ما لكم لا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الولدان يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و لنا و لنا من لدنك وليا ولیا لنا من لدن که نصیرا چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تزعیف شده اند پیکار نمی کنید. همان افراد ستم دیده ای که می گویند پروردگارا ما را از این شهر مکه که اهلش ستمگراند بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده، و از جانب خود یار و یاوری برای ما تئین فرماید.الذین فقاتلوا أولیاء الشيطان، إن كيد الشيطان كان کسانی که ایمان دارند در راه خدا پیکار می و آنها که کافرند در راه تاغوت پس شما با یاران شیطان پیکار کنید زیرا که نقشه شیطان همانند قدرتش ضعیف است علم تر ایلالذین قیل لهم كفوا ایدیكم و اقیمو الصلاة و آتو الزکاة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 لولا اخرتنا الى اجل قریب متاع الدنیا قلیل والآخرت خير لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا آیا ندیدی کسانی را که در مکه به آنها گفته شد فعلا دست از جهاد بردارید و نماز را برپا کنید و زکات بپردازید اما آنها از این دستور ناراحت بودند ولی هنگامی که در مدینه فرمان جهاد به آنها داده شد جمعی از آنان از مردم می ترسیدند همانگونه که از خدا می ترسند بلکه بیشتر و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی؟ چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر نینداختی به آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی به شما ستم نخواهد شد أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لی القوم لا یکادون یفقهون حدیثا هر جا باشید مرگ شما را در میابد هرچند در برج های محکم باشید و اگر به آنها منافقان حسنه و پیروزی برسد میگویند این از ناهیه خداست و اگر سیعه و شکستی برسد میگویند این از ناهیه توست بگو همه اینها از ناهیه خداست پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسل رسولا و بالله شهیدا آری، آنچه از نیچی ها به تو میرسد از طرف خداست و آنچه از بدی به تو میرسد از سوی خود توست و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره کافی است. من فقد الله ومن کسی که از پیام بر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و کسی که سر باز زند تو را نگهبان و مراقب او نفرستادیم و در برابر او مسئول نیستی و یقولون فإذا برزوا من عندك بيته قائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله و وکیلا آنها در حضور تو میگویند فرمانبرداریم اما هنگامی که از نزد تو بیرون می روند جمعی از آنان برخلاف گفته های تو جلسات سری شبانه تشکیل میدهند آن را در این جلسات میگویند خداوند مینویسد اعتنایی به آنها نکن و از نخشه های آنان وحشت نداشته باش و بر خدا توکل کن کافی است که او یار و مدافع تو باشد ولو كان آیا درباره قرآن نمی اندیشند اگر از سوی غیر خدا بود اختلاف فراوانی در آن می‌یافتند و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله ل الا و که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد بدون تحقیق آن را شایع میسازند در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند بازگردانند از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز عده کمی همگی از شیطان پیروی می‌کردید و گمراه می‌شدید فقاتل فی سبیل الله فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حریضی المؤمنین عسالله این یکف بأسا الذین کفرون والله اشد بأسا و اشد تنکیلا در راه خدا پیکار کن تنها مسئول وظیفه خود هستی و مؤمنان را تشویق نما امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند و خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است. من يشفع شفاعت حسناتی کل له نصیب منها و منی اشفع شفاعت سیاتی کل له کفل منها و کان الله علی كل شيء مقتا کسی که شفاعت بکار نیکی کند نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی که شفاعت بکار بدی کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند حساب رست و نگهدار هر چیز است و ایده حوییتم بی تحییت منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا هرگاه به شما تهییت گویند پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا لااقل به همان گونه پاسخ گویید خداوند حساب همه چیز را دارد الله لا إله إلا لا يَجْمَعُ عِندَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حدیثا. خداوند معبودی جز او نیست و به یقین همه شما را در روز رستاخیز که شکی در آن نیست جمع می‌کند و کیست که از خداوند راستگوتر باشد فما لكم في المنافقين فئتان والله أركسهم بما كسبوا اتريدون أن تهدو من اضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا چرا در باره منافقین دو دسته شده اید؟ در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان افکار آنها را کاملاً وارونه کرده است آیا شما میخواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده هدایت کنید؟ در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت لو تکفرون کما فتکونون فَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّو فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا آنان آرزو می کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید و مساوی یکدیگر دیگر باشید بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید مگر اینکه توبه کنند و در راه خدا هجرت نمایند هرگاه از این کار سرباز زنند هر جا آنها را یافتید اسیر کنید و در صورت احساس خطر به قتل برسانید و از میان آنها دوست و یار و یاوری اختیار نکنید إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فعه اعتزلوكم فلم ونقاكم ولق إكسل فم جعل الله لكم فما جعل الله لكم عليهم سبیله مگر آنها که با همپیمانان شما پیمان بستهند یا آنها که به سوی شما میآیند و از پیکار با شما یا پیکار با قوم خود ناتوان شده اند و اگر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلط می‌کند تا با شما پیکار کنند پس اگر از شما کنارگیری کرده و با شما پیکار ننمودند بلکه پیشنهاد صلح کردند خداوند به شما اجازه نمیدهد که متعرض آنان شوید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 فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا. به زودی جمعیت دیگری را مییابید که میخواهند هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناحیه قوم خودشان هر زمان آنان را به سوی فتنه و بت بازگردانند با سر در آن فرو میروند. اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح نکردند و دست از شما نکشیدند آنها را هر جا یافتید اسیر کنید و یا به قتل برسانید آنها کسانی هستند که ما برای شما تسلط آشکاری نسبت به آنان قرار داریم ایم و ما کان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه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 و الله من هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند و در این حال کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون به کسان او بپردازد. مگر اینکه آنها خون ها را ببخشند و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده تنها باید یک برده مؤمن را آزاد کند و پرداختن خون ها لازم نیست و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است باید خونبه های او را به کسان او بپردازد و یک برده مؤمن نیز آزاد کند و آن کس که دسترسی به آزاد کردن برده ندارد دو ماه پی در پی روز میگیرد این یک نوع تخفیف و توبه الهی است و خداوند دانا و حکیم است و من یقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه له عذابًا عظیماً و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قصد برساند مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن میماند و خداوند بر او قذب می کند و او را از رحمتش دور میسازد و و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است یا أيها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقا ایلیکم السلام لست مؤمنا تبتغون ذبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم منقبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا گام میزنید و به سفری برای جهاد میروید تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا و قنایمی بدست به دست آورید به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند نگویید مسلمان نیستی. زیرا قنیمتهای فراوانی برای شما نزد خداست. شما قبلا چنین بودید و خداوند بر شما مننت نهاد و هدایت شدید. پس به شکرانه این نعمت بزرگ تحقیق کنید خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون في سبیل الله والمجاهدون في سبیل الله بی اموالهم فضل الله المجاهدین بی اموالهم على انفسهم القاعدین درجه و وعد الله الحسنى و الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما هرگز افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد باز نشستند با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر ترک کنندگان جهاد برتری مهمی بخشیده و به هر یک از این دو گروه به نسبت اعمال نیکشان خداوند وعده پاداش نیک داده. و مجاهدان را بر قاعدان با پاداش عزیمی بر بخشیده است درجات من و رحمه و الله غفور الرحیم. مهمی از ناحیه خداوند و آمرزش و رحمت نصیب آنان میگردد و اگر لغزش هایی داشتهاند خداوند آمر زنده و مهربان است. إن <تصفح> الذين توفّهم الملائكة تُعَلِّمِ أنفسهم قالوا قالوا في مكُنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجروا فيها کسانی که فرشتگان روح آنها را گرفتند در حالی که به خیشتن ستم کرده بودند به آنها گفتند شما در چه حالی بودید؟ گفتند ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم آنها فرشتگان گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید آنها عذری نداشتند و جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی است الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا لا ولا مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار قرار گرفته اند و حقیقتا مستضعفند نه چاره دارند و نه راهی می اولائك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفو و غفورا ممکن است خداوند آنها را مورد عفو قرار دهد و خداوند عفو کننده و آمرزنده است ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله و الله غفور کسی که در راه خدا هجرت کند جاهای امن فراوان و گستردهای در زمین می یابد. و هر کس به عنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او از خانه خود بیرون رود سپس مرگش فرار رسد پاداش او بر خداست و خداوند آمر زنده و مهربان است وإذا في الارض فليس عليكم جناح أن من الصلاة ان يفتنكم الذين كفروا إن هنگامی که سفر میکن گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر از فتنه و خطر کافران بترسید. زیرا کافران برای شما دشمن آشکاری هستند. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم والليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فاليكونوا من وراكم والتأت طائفه أخرى والتأت طائفه أخرى لم يصلوا فاليصلوا معك والليأخذوا حذره وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَتَهُ وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ او کنتم مرضان تضعو اسلحتکم و خذو حذركم، این الله اعد للكافرین عذابا مهینا و هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز را برپا کنی باید دسته از آنها با تو به نماز بخیزند و صلاح هایشان را با خود برگیرند و هنگامی که سجده کردند و نماز را به پایان رساندند باید به پشت سر شما به میدان نبرد بروند و آن دسته دیگر که نماز نخانده و مشغول پیکار بودهاند بیایند و با نماز بخوانند. آنها باید وسایل دفاعی و صلاحهایشان را در حال نماز با خود حمل کنند زیرا کافران آرزو دارند که شما از سلاح‌ها و متاهای خود قافل شوید و یکباره به شما حجوم آورند و اگر از باران ناراحتید و یا بیمار و مجروح هستید مانعی ندارد که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید ولی وسایل دفاعی مانند زره و خود را با خود بردارید خداوند عذاب خوار کنندهای برای کافران فراهم شده است. فإذا فا قضیتم الصلاة فذكر الله قياموا و قعودوا وعلى جنوبكم فإذا فا طمأننتم فأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا و هر که نماز را به پایان رساندید خدا را یاد کنید ایستاده و نشسته و در حالی که به پهلو اید و هرگاه آرامش یافتید نماز را به طور معمول انجام دهید زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای مؤمنان است ولا تهنوا في بتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ودراح تعقيب دشمن هرگز سوست نشوید زیرا اگر شما درد و رنج میبینید آنها نیز همانند شما درد و رنج میبینند ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند و خداوند دانا و حکیم است اینا الیک الكتاب بالحق لتحكم بین الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی و از کسانی مباش که از خائنان و الله ان الله كان غفورا رحيما و از خداوند طلب آمرزش نما که خداوند آمرزنده و مهربان است ولا تجادل عن الذين يخطئون انفسهم این الله لا يحب من كان خوانا اثيما و از آنها که به خود خیانت کردند دفاع مکن زیرا خداوند افراد خیانت پیش گنهکار را دوست ندارد یستقفون من الناس ولا یستقفون من الله وهو معهم اذ یبیتون اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و الله بما محيطا. آنها زشتکاری خود را از مردم پنهان میدارند اما از خدا پنهان نمیدارند و هنگامی که در مجالس شبانه سخنانی که خدا راضی نبود میگفتند خدا با آنها بود خدا به آنچه انجام میدهند احاطه دارند. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم, في جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمَن ام أمَن يكون عليهم وكيلا شما همانها هستید که در زندگی این جهان از آنان دفاع کردید اما کیست که در برابر خداوند در روز رستاخیز از آنها دفاع کند یا چه کسی است که وکیل و حامی آنها باشد و من یجلی الله غفورا رحیما کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند سپس از خداوند طلب آمرزش نماید خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت و من یکسب اثم فا انما یکسبهو علا و کان الله علیما حکیما و کسی که گناهی مرتکب شود به زیان خود مرتکب شده خداوند دانا و حکیم است. و من يكسب به خطیعتا او ثم يرم به بریعا فقد فقد احتمل مهتانا و اثم مبين. و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود سپس بی گناهی را متهم سازد بار بهتان و گناه آشکاری بر گرفته است ولولا فضل الله عليك و رحمته لهم نطائفه منهم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 و فضل الله اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود گروهی از آنان تصمیم داشتند تو را گمراه کنند اما جز خودشان را گمراه نمی کنند و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند. و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچرا نمیدانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو هموار بزرگ بوده است لا خیر فی كثير من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح او اصلاح بین الناس و يفعل ذلك مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا در بسیاری از سخنان درگوشی و جنسات محرمانه آنها خیر و سودی نیست مگر کسی که به این وسیله امر به کمک به دیگران یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند و هر کس برای خوشنودی پروردگار چنین کند پاداش بزرگی به او خواهیم داد و من یشاق قرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبیع غیر سبیل المؤمنین و یتبیع غیر سبیل المؤمنین ما تولى و نصله جهنم و مصيرا. کسی که بعد از آشکار شدن حق با پیام بر مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید ما او را به همان راه که می میبریم و به دو زخ داخل میکنیم و سرانجام بدی است. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا خداوند شرک به او را نمی آموزد ولی کم از آن را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند می آمر و هر کس برای خدا همتائی قرار دهد در گمراهی دوری افتاده است این یدعون من دونهی الا ایناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا آن چه قیر خدا می خانند فقط بطها است بی روح که هیچ اثری ندارد و یا شیطان سرکش و ویرانگر است لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا خدا او را از رحمت خیش دور ساخته و او گفته است از بندگان تو سهم معینی خواهم گرفت ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمراً لهم فلا يبتّقن فلا يبتّقن أذان الأعام ولا أمراً لهم فلا خلق الله ومن يتخذ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد و آنها را گمراه میکنم و به آرزوها سرگرم میسازم و به آنان دستور میدهم که اعمال خرافی انجام دهند و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند و فطرت توحید را به شرک بیالایند و هر کس شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند زیان آشکاری کرده است شیطان به آنها وعده های دروغی می دهد و به آرزوها سرگرم می سازد در حالی که جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمی دهد. اولا آنها پیروان شیطان جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری ندارند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 و اعمال صالح انجام داده اند به زودی آنان را در باقهایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش است جاودانه در آن خواهند ماند وعده حق خداوند است و کیست که در گفتار و وعده هایش از خدا صادق تر باشد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا شما و آرزوهای اهل کتاب نیست هرکس عمل بدی انجام دهد کیفر داده می شود و کسی را جز خدا ولی و یاور خود نخواهد یافت. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فأولائک و, ولا و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد خواه مرد باشد یا زن در حالی که ایمان داشته باشد چنان کسانی داخل بهشت میشوند، و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً دین و آین کی کیسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند و نیکو کار باشد و پیرو آیین خالص و پاک ابراهیم گردد و خدا ابراهیم را به دوستی خود انتخاب کرد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بکل محيط. آنچه در آسمانها و زمین است ازان خداست و خداوند به هر چیزی احاطه دارد و یستفتونک فی النساء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ وَتُرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا و ان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علیما. از تو درباره حکم زنان سوال کنند بگو خداوند درباره آنان به شما پاسخ میدهد. آنکه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوقشان را به آنها نمیدهید و میخواهید با آنها ازدواج کنید و نیز آنچه درباره کودکان صغیر و ناتوان برای شما بیان شده است قسمتی از سپارش های خداوند در این زمینه می باشد و نیز به شما سپارش می کند که با یتیمان به عدالت رفتار کنید و آنچه از نیکی ها انجام می دهید خداوند از آن آگاه است و به شما پاداش شایسته میدهد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 و این حسینو تاتقف این الله که نبیم عملونخوامی را و اگر زنی از تغیان و سرکشی یا اراض شوهرش بین داشته باشد مان این ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است اگر چه مردم بخل میورند و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیش سازید و بهخاطر صلح گذشت نمایید خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است و پاداش شایسته به شما خواهد داد ولن تستطیعو أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميل كل المیل فتذروها كالمعلقه و این تصلحو و الله كان غفورا رحیما. شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی در میان زنان عدالت برقرار کنید هرچند کوشش نمایید، ولی تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده درآورید. و اگر راه صلاح و پرهیزگاری پیش گیرید خداوند آمرزنده و مهربان است و الله من سعته و الله واسعا اما اگر راهی برای اصلاح در میان خود نیابند و از هم جدا شوند خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بینیاض میکند و خداوند دارای فضل و کرم و حکیم است ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد لقد وصینا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و أن تتقوا الله و این تکفرو فإن لله ما في السماوات و ما في الأرض الله غنيا حميدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ازان خداست و ما به کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها داده شده بود سفارش کردیم همچنین به شما نیز سفارش میکنیم که از نافرمانی خدا بپرهیزید و اگر کافر شوید به خدا زیانی نمیرسد زیرا برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و خداوند بینیاز و ستوده است ولله ما و فی و کف برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است و کافی است که خدا حافظ و نگاهبان آنها باشد ای الناس و, و الله على ذلك قدیرا. ای مردم اگر او بخواهد شما را از میان میبرد و افراد دیگری را میآورد و خداوند بر این کار تواناست. نكن كان يريد ثواب دنیا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا ضصيرا کسانی که پاداش دنیوی بخواهند و در قید نتایج معنوی و اخروی نباشند در اشتباهند زیرا پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خداوند شنوا و بیناست یا ایها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ای کسانی غنيا فقيرا فالله بهما فلا تتبعوا الهوى تعدلوا تعرضوا الله كان بما تعملون ای ایمان آورده اید کاملا قیام به عدالت کنید برای خدا شهادت دهید اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد چرا که اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن ایراز نمایید خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. يا أيها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و والیوم و رسله و اليوم فقد, فقد ضل ضلالا بعیدا ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیام برش و کتابی که بر او نازل کرده و کتب آسمانی که پیش از این فرستاده است ایمان واقعی بیاورید. کسی که خدا و فرشتگان او و کتاب‌ها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند در گمراهی دور و درازی افتاده است <تصفيق> ثم ازدادوا كفرا لم الله لهم ولا کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند باز هم ایمان آوردند و دیگر بار کافر شدند سپس بر کفر خود افزودند خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راه راست هدایت نخواهد کرد به المنافقین بان ان لهم عذابا الیما به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین العزت العزت همانها که کافران را بجای مؤمنان دوست خود انتخاب میکنند آیا عزت و آبرون از نزد آنان میجویند با اینکه همه عزتها از ازان خداست وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُقْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُوْدُ فَلَا تَقُوْدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ان الله جامع في جهنم جميعا. و خداوند این حکم را در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می کنند با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند وگرنه شما هم مثل آنان خواهید بود خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا الم لكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار میکشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد میگویند مگر ما با شما نبودیم و اگر بهره ای نصیب کافران گردد به آنان میگویند مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان تشویق نمی کردیم. خداوند در روز رستاخیز میان شما داوری میکند و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منافقان میخواهند خدا را فرید دهند در حالی که او آنها را فرید میدهند. و هنگامی که به نماز برمیخیزند، با کسالت برمیخیزند و در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند مذبذبین بین ذالک لا اله اولائی ولا اله و آنها افراد بی هدفی هستند که نسوی اینها و نسوی آنهایند و هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ي ایمان يمان آوردهئد ر از منن کافران را ولی و تکیه گاه خود قرار ندهید آیا میخواهید با این عمل دلیل آشکاری بر ضد خود در پیشگاه خدا قرار دهید؟ منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارند و هرگز یا برای آنها نخواهی یافت. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا <تصفيق> بالله وأخلصو دينهم لله وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما مگر آنها که توبه کنند و جبران و اصلاح نمایند و به دامن لطف خدا چنگ زنند و دین خود را برای خدا خالص کنند، آنها با مؤمنان خواهند بود و خداوند به افراد با ایمان پاداش عظیمی خواهد داد. ما يفعل الله بمعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر گذاری کنید و ایمان آورید خدا شکرگزار و آگاه است لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علیما خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیهای دیگران را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد خداوند شنوا و داناست اِن تُنْدِذُوا خَيْرًا او تُخْفُوهُ او تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا اگر نیکی را آشکار یا مخفی سازید و از بدی ها گذشت نمایید خداوند آمرزنده و تواناست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 کسانی که خدا و پیامبران او را انکار می کنند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیز قائل شوند و می گویند به بعضی ایمان می و بعضی را انکار می کنیم و می خواهند در میان این دو راهی برای خود انتخاب کنند هم حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا آنها کافران حقیقی و برای کافران مجازات خار کننده ای فراهم ساخته ایم و الذین آمنوا بالله و رسله و لم يفرقوا بین احد منهم اولائی اولائك سوف ياتيهم اجورهم وكان الله وفورا ولی کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده و میان احدی از آنها فرق نمیگذارند پاداششان را خواهد داد خداوند آمر زنده و مهربان است يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا، فقالوا أرنا الله جمرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك و موسى سلطانا مبینا اهل کتاب از تو میخواهند کتابی از آسمان یک جا آنها نازل کنی در حالی که این یک بهانه است آنها از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشان ده و به خاطر این ظلم و ستم صاعقه آنها را فرا گرفت سپس گوساله سامری را پس از آن همه دلایل روشن که برای آنها آمد به خدایی انتخاب کردند ولی ما از آن درگذشتیم و عفو کردیم و به موسی برهان آشکاری داریم و رفعنا فوقهم الطور بميثاق و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و لهم لا تعدوا في السبت واخذنا واخذنا منهم ميثاقا غليظا و كوه طور بر فراز آنها برف و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم و به آنها گفتیم برای توبه از در بیت المقدس با خضوع درایید و نیز گفتیم روز شنبه تعدی نکنید و دست از کار بکشید و از آنان در برابر همه اینها پیمان محکمی گرفتیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم, وقولهم قلوبنا غُلظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولي بخاطر پیمان شکنی آنها و انکار آیات خدا و کشتن پیام بران به ناحق و به خاطر اینکه از روی استهزامی گفتند بر دلهای ما پرده افکنده شده رانده درگاه خدا شدند آری خداوند به علت کفرشان بر دلهای آنها مهر زده که جز اده کمی ایمان نمی آورد. وبينكم فرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ونيز بخاطر كفرشان تهمت بزرگی که بر مریم زدند وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم و الَّذِينَ که ما مسیح عيسى بن مريم پيامبر خدا را کشتیم در حالي كه نه او را کشتند و نه بردار آویختند، را لكن امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد قتل او اختلاف کردند از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و قطعا او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خداوند توانا و حکیم است و این من اهل الكتاب، الا يؤمن نبیه قبل موته و یوم القیامت یکون علیه شهیده و هیچ از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگش به او حضرت مسیح ایمان میآورد آورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود. بسبب من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم وبصد عن سبيل الله كثيرا به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود حرام کردیم و اخذهم الربا وقاتنه عنه واكلهم اموالا الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً و همچنین به خاطر ربا گرفتن در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل و برای کافران آنها عذاب دردناکی آماده کرده ایم لیکن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك والمقیمين والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك اولئك سناتيهم اجرا عظيما ولی راسخان در علم از آنها و مؤمنان به تمام آنچه که بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردید ایمان می آورند همچنین نماز گزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت به زودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد اینا اوحینا اینا نوح و النبی من بعده و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و عیسی و, و, و, و, و داود زبورا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به و پیام بعد از او وحی فرستادیم و به ابراهیم و اسمائیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و ایسا و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و احنمودیم و به داوود زبور دادیم و رسلا قد قصصناهم عليک من قبل و رسلا لم نقصصهم عليک و کلم الله موسی تکلیما و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو باز گفته ایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکرده ایم و خداوند با موسی سخن گفت و این امتیاز عذان او بود رسولان مبشرین و منذرین لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما پیامبرانی که بشارت دهنده و بین دهنده بودند تا بعد از این پیامبران حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند و خداوند توانا و حکیم است لكن الله موشدو بمازل انزل که انزله بعلمی وال الملا که توشددون و کف ولی خداوند گواهی میدهد به آنچه بر تو نازل کرده که از روی علمش نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می‌دهند هرچند گواهی خدا کافی است این الذين و وصدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند در گمراهی دوری گرفتار شدهاند این‌الذین کفرو و ظلموا لَمْ يَكُونِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقَهُمْ کسانی که کافر شدند و به خود و دیگران ستم کردند، هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید و آنان را به هیچ راهی. هدایت نخواهد کرد الا طريق جهنم ما خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. مگر به راه دوزخ که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار برای خدا آسان است يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم و تكفروا تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكما أي مردم پیامبری که انتظارش را میکشیدید حق را از جانب پروردگارتان آورد به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر شوید به خدا زیانی نمیرسد، زیرا آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله و وَلَا ولا تقولوا ثلاثة انتهو خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اي اهل كتاب در دين خود قلوب و زیاده روی نکنید و درباره خدا غیر از حق نگویید مسیح ای سبت مریم فقط فرستاده خدا و کلمه و مخلوق اوست که او را به مریم القانمود و روحی شایسته از طرف او بود بنابراین به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است از این سخن خود داری کنید که برای شما بهتر است، خدا تنها معبود یگانه است، او منزه است که فرزندی داشته باشد، بلکه ازان اوست آنچه در آسمانها و در زمین است و برای تدبیر و سرپرستی آنها خداوند کافی است، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا هرگز مسیح از این عبا نداشت که بنده خدا باشد و نه فرشتگان مقرب او از این عبا دارند و آنها که از عبودیت و بندگی او روی برتابند و تکبر کنند به زودی همه آنها را در قیامت نزد خود جمع خواهد کرد فا اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ استَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اما آنها که ایمان آوردند و اعمال سالح انجام دادند پاداششان را به طور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنها خواهد افزود و آنها را که ابا کردند و تکبر ورزیدند مجازات دردناکی خواهد کرد و برای خود غیر از خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت یا ایوه الناس قد جاءكم برهان من ربكم و و انزلا ایلیکم ای مردم دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمد و نور آشکاری به سوی شما نازل کردیم اما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فِي في رحمه منه وفضل ويهديهم ويهديهم اليه صراطا مستقيما اما آنها که به خدا ایمان آوردند و به آن کتاب آسمانی چنگ زدند به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و در راه راستی به سوی خودش هدایت می کند یستفتون قل الله یفتیکم في الكلاله این امرعن هلک نیس له ولد و له اخت فلها فلها نصف ما ترك وهو يرثها یرثها لم يكن لها ولد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 درباره ارث خواهران و برادران سوال کنند بگو خداوند حکم کلاله خواهر و برادر را برای شما بیان می کند اگر مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به گذاشته از او ارث میبرد. و اگر خواهری از دنیا برود و وارث او یک برادر باشد او تمام مال را از آن خواهر به ارث می برد در صورتی که فرزند نداشته باشد. و اگر دو خواهر از او باقی باشند دو سوم اموال را میبرند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند، تمام اموال را میان خود تقسیم میکنند و برای هر مذکر دو برابر سهم معس است. خداوند، احکام خود را برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست